این قرآن چقدر زیباست؟ بله همینطور است این نقش جالب در حاشیه قرآن چیست؟ به این هنر تسخیب میگوییم تسخیب هنر تزیین صفحه های کتاب است هنر تزعیب فقط مخصوص قرآن است نه، تصحیب روی کتاب علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود. این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی‌داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب وجود داشته است نقشه های, های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. کتاب های زیادی از ایران با هنر تسهیب در موزه های جهان وجود دارد. هنر تزهیب در کشورهای دیگر هم هست؟ بله ولی تسهیب ایرانی بهترین تسهیب در جهان است.